با خون با خون اندیشیدن با خون خود اندیشیدن فلسفه با خون خود اندیشیدن است یعنی چگونه خون سرخ جگر اندیشه روشن و سپید خرد می شود رابطه خدایان با انسان در فرهنگ ایران چیست در فرهنگ ایران خرد در همه تن هست همه تن با هم میاندیشد اندیشیدن محصول همکاری و انباجی پاو و دست و شکم و اندام آمیزشی و زایشی و جگر و دل و مغز و خون پیو. ریه و گلوب و پوست و استخان با همه است اندیشیدن محصول همکاری و انبازی پا و دست و شکم و اندام آمیزشی و زایشی و جگر و دل و مغز و خون و پی و ریه و گلو و پوست و استخان با همه است این بنیاد فلسپه ایران است این اندیشه به کلی فلسفهای دیگر اخلاقی دیگر دینی دیگر سیاستی دیگر پدید می‌آورد. پیامد این اندیشه بنیادی یکی آن است که همه ملت و جامعه با هم یک تن هستند خرد در یک عضو خاص در تن نیست در ت... سر نیست که انتباق بدهند با شاهان یا با رهبران خرد در یک اصل خاص در تن نیست بلکه اندیشه درست پایایند همکاری و هم اندیشی همه اعضا و اندام ملت است البته این اندیشه بنیادی در آغاز کل بشریت را دست بر در بر می گرفت است یک به یک این اندام ها در همه انسان ها با هم یک خدا با هم بودند اندام گوناگون هر تنی از انسان بهره از گوهر خدایان گوناگون است و خدایان از هم جدا نیستند بلکه مانند شاخه‌های یک درخت هستند خدایان ایران همیشه به صورت یک درخت نمایش داده می شود این درخت خدایان هستند مفهوم شرک و توحید و این تفکر ایرانی بوده هستند. گی خدایان در اثر پیوند یعنی مهر آنها به هم دیگر است. یک خدا به خودی خودش جاوید نیست بلکه مهر خدایان با هم دیگر خدایان با هم دیگر این جاویدانگی ایجاد میکنن همین اندیشه است که یک ملت یا یک بشریت یا یک جامعه را درست میکنن جابدگانگی خدایان در اثر پیوند یابی یعنی مهر آنها به همدیگر است فقط هستند خیلی مهمه. فقط هستند هنگامی با هم انباتند با هم میاندیشند، با هم همکاری میکنند خدایان و انسان ها در این تپرهنگ ایران موجودات جدا و دور از هم نیستند خدا یک چیز فراجهانی نیست این است که در لحظه که ما مرگ می همه اجزا و اندام و شیرابه های وجود ما وجود هر انسانی هموندم به خدایان می پهندن. باز در خدایان هم چون هم به هم پیوستهاند، باز در اثر مهر باز همه یک جان می شود. این عبدیشه را سپس با آمدن آموزه زردوشت خالیت معنی کردند. چطور؟ به دینشان که گفتند فلان جزء از تن از تن انسان همچون یا همانند فلان خداست مثل امروزه که همه فرهنگ ایران را در س... در حافظ و مولوی و عطار اینها به عنوان تشابه همه را بیمعنی میکنن اینها زردوشتی ها چی گفتن؟ زردوشت مودان زردشتی گفتن این همگوهری را گذاشتن کنار گفتن فلان جز از تن همچون یا همانند فلان خداست یعنی خدایان را از وجود انسان ترد و تبیید کردن این است که دینی درست شد که دیگر با دینی که در فرهنگ ایران معنا داشت برابر نبود متضاد با اون بود چون اون دین معناش این بود که خدایان در انسان به هم پیوند میابند یک انسان به وجود میاد این اندیشه در شکلهای مختلف سپس باقی مونده است فقط باید این اصطلاح چون و مانند را دور انداخت تا در این متون مفهوم نخستین خدایان ایران را برای خود روشن کرد خدایان اناسر وجود انسان یا جهانند چون چنانچه در زبان سقدی به اناسر چی میگویند؟ امشاس بندان معنایی که یزدانشناسی زردشتی به امشاست بندان میدهد به درد فهم یزدانشناسی زردوشتی میخورد اینی که میگویند علمی فکر کنید یه علمی مقصودشون تئولوژی تیولوژی یزدانشناسی زردشتی را که ایران ایرانشناسان تحقیقات رو اون کردن این شده از علم یعنی فرهنگ ایران را بگذارید کنم معنایی که یه شناسی به شناسیه به می دهد به درد فهم ایران نمی خورد. در گزیده های زادش پرم بخشی هست به نام درباره ساخت مردمان یعنی ترکیب انسان در اینجا می آید که درباره ساخت مردمان که همانندی مردمان چون سپهر آسمان گردان خوب نگاه کنید همانندی همینجا مسئله تمام شد یعنی چی؟ یعنی هم همگوهری انسان با خدا همه این گوهر در همه انسانها با هم یک خداست یعنی خدا در همه هست جزء همه انسان ها اینجا یاد دو نرود اینجا مسئله همون سکولاریسم است که انبوستر هست خدا از انسان خدا از دنیا جدا نیست در زهشی ایمانند در هر چیزی هست گفتیم که در گزیده های زادست پرم می درباره مردمان در ساخت مردمان که همانندی مردمان چون سپر آسمان گردان است. خوب با همین همانند همه فرسن، فرسنگ ایران مغز کرده می شود این همانندی نیست بلکه همگوهریست و هر ای نیست این همانی با گوهر خدایی دارد یعنی درست بهرهای از همه سپهرها یعنی همه خدایان در تن هر انسانی هست ببینید چه عرجی پیدا می کند. خدا؟ خدایان اجزا تن انسان هست و انبازی انبازی و مهر خدایان با هم ایجاب انبازی و مهر این اجزا در ساختار تن انسان میکند البته این حب تا اندازه زیادی دستکاری شده است تا انتباق با یا شناسی زردشتی پیدا کند یعنی این در گذیده های زادش برم البته در ابوریحان هم به شیوه دیگر میآید که بحث اینها فوق العاده جالب است چون که همه اینها در رغم تفاوتشون خیلی از نکات را بازگو میکنند ولی با این عبرقم این دستکاری ها اندیشه بنیادی باقی مانده است تنکردی که جسمانی و مادی باشد در هر انسانی بنابر این تصویر هفت لایه دارد. لایه میانی مغز است که این امانی با ماه دارد. این ماه پیوند سه خدا با هم بوده است. رام و بهرام و یا ماه پر... این ماه پر بحث است پیوند حلال ماه و خوشه پربرین را ماه پر میگفتن پس من این لایه میانی وجود انسان که مغض باشد با چنین ماهی انتباق دارد سپس لایه دوم استخان است که این همانی در این گازیده های با تیر داده میشود. لایه سیوم روی آن گوشت است که این همانی با ناهید داده می شود که در واقع زهره یا خرم بوده است ولی زردوشتی ها حاضر نیستن که نام زهره یا را را ببرند بلکه جایش ناهید می گذار. علتش رو بحث خواهیم کرد لایه چهارم پیست که در اصل, در اصل رگ بوده است و این مهر است. یعنی خورشید که ارتا باشد و لایه پنجم رگ است که البته در حقیقت پی بوده است و اون بهرام است خوب نگاه کنید بهرام ارتا زهره لایه ششم پوست است که به اهور در یا دانش شناسی زردشتی به اهورامزدا نسبت داده میشد ولی ان یا همون مشتریش که همون ان انهو هوما که با همون زیمور میباشد و بالاترین لایه کیوان است که موی ها باشن خوب نگاه کنید در تن انسان این همچون رو که گذاشتیم کنار این خدایان همه در تن انسان هم گوهر انسانه. به عبارت دیگر همه اجزای تن انسان بهرهای از گوهر خدایان هستند. در مغز استخان هر انسانی که البته مغز در جمجمه هست یعنی در استخان هست انباز و بهرمند از گوهر ما هست همطور یعنی مغز انسان حواس از او پیدایش مییابند این ماه هست. خرد انسان که تا اونجا که به مغز مربوط است از چنین انصری یعنی چه ارزشی دارد یعنی چه مرجعیتی دارد این را خوب در نظر بگیرید ماه و مر لایه لایحچندم است لایه چهارم است که رگ و خون باشد اینها هر دو تا دو تا میان هستند مهر چه به میانه هفت را و ما میانه میانه شش لایه دیگر است این فوق العاده مهم است چون که این میانه بودن معنای اصل بودن و مهر بودن است اصل پیوند و مهر است در تن انسان هفت سپه که جهان آن رود بوده هست ببینید آنها با تصاویر خودشان چه مفاهیمی را بیان کردند در همین فصل دیده می شود. در همین فصل در گذیده های زادست دیده می شود. که چهار آمیزه تن یعنی خلط تن را که خون و بلغم و زرداب و سودا باشد این همانی با چهار طبقه در اجتماع میداد که آموزگاران باشند که ارتشداران و کشاورزان و پرستداران که نگهدارندگان و بیشهوران باشند یعنی تمام اینها همه در انباز میشوند و همه اینها با هم میاندیشند این یک نقطه سیاسی اجتماعی هست که ما در نشناختن این تصابیر به کلی پراموش میکنیم این ابکار دموکراسی و سوسیالیسم و اینها چیز تازه ای نیست چیز هزاره فقط ما چون زبان این پیشینیان یا رو نمیدانیم خیال میکنیم یک چیزی موجزه ای از غرب برای ما وارد شده است معمولا این انتباغات طبق آموزه سیاسی و دینی در دوره های مختلف جابجا به جا ولی اندیشه بنیادی آن است که ملت و جامعه و شهر و اجتماع و بشریت و گیتی با انبازی و پیوند و مهر با هم کار میکنند و میاندیشند و اگر این انبازی و پیوند یا مهر نباشد به هم میخورد و مخشوش می شود و هرجو مرد میگردد این است که مفهوم مهر و عشق و دوستی یک پدیده جنسی و شهبانی خشک و خالی نبوده است بلکه شامل همه یونه پیوندها ها می شده است خوب دیده می شود که اندیشه دموکراسی و سوسیالیست پدیده تازهی نیست همطور اندیشه ارج انسانی که می گویند کرامت کرامت غلط است عرج درست است این عرج این ارج خدایان در انسان کریستال وجود انسانان لایه‌ها های مختلف وجود انسان این بزرگترین ارج به انسان داده می شود خدا از انسان دور نیست با لازم ندارد این دیگه نمیش بعد این ترتیب میبینیم اندیشه دموکراسی و سوسیالیسم این ارجا انسان که اساس حقوق بشر هست ریشه بسیار کوهنی دارد ما از این هاست که باید از این تصویر است که باید حقوق بشر را بفهمیم نه اینکه که این از مباد حقوق بشر را حفظ بکنیم یا برای ما تکرار بکنن این تصویر که جا افتاد انسان متوجه حقوقش می شود اصل حقوقش می شود درک می کند که این بهرهای خدایان این حق در او هست که ترابوش میکند در اندیشه ها فقط ما امروزه مفهوم بهر و دوستی را بسیار تنگ میفهمیم همین مفهوم انبازی و همکاری سراسر اندام در تن در اندیشیدن در داستان سقطر خونی که رستم در خانه هفتم از جگر و دل مغز سپید میگیرد و با چکندن در چشم حکومت مداران ایران میریزد چشم همه باز خورشید میشوند بحری خ... یعنی بحری از خورشید میشوند باز با خورشید میشوند باز تابیده میشوند چون رگ و پی یعنی عصب در فرهنگ ایران از هم جدا جداناپذیرند و این دو ارطا و بهرام هستند که چی هستند دو بونه جفت آفریننده جهانم و هر کدام به تنهایی نیست شامل دیگری هم هست یعنی وقتی ما رگ میگیم یعنی پی پی میگیم یعنی رگ همین مسئله است که ما در گذیده های زادست برم این را متوجه نمی شویم. تا این مفهوم جفتی را نفهمیم و درست در همین گذیده های زادست برم لایه چارم و پنجم که که جالایه چارم و پنجم تن و وجود هر انسانی هستند در این رگ است که خون باشد که این همانی با آتش و تب داده می شود. یعنی مهر مهر رگ است خون درش داری یعنی اصل گرما و این همانی با مهر و دوستی دارد و طبق تصویری که اوبید می زاکان میارد سنمیست که در یک دست نای و در دست دیگر جام باده دارد نای که البته اون چنگ میگوید ولی در قدیم رست بوده است چون که نی اصل همه موسیقی بوده است چنگ و اینها هم همه نی بودن در یک دست یعنی نای رگ است جام باده همون خون خونست میبینید این مفاهیم چجور در این تصاویر جا به جا می شود یا تحول پیدا میکنه و حالا سپس خواهیم دید که این همانی با دل داده می شود این خون که از جگر میاد و در همه تن پخش میکنه پخش میگردد با از دل و به مغز میرسونا این خون رو وقتی این ما و در مغز در اعصاب تبدیل به حواس یعنی اندام دانایی میشوند و خود چشم انسان طبق بندهش یکی این همانی با ماه دارد یعنی بینش در تاریکی که مغز باشد و دیگری این همانی با آفتاب مهر داده می شود که این همانی با مهر و دوستی دارد و بینش در است ببینید در این تصاویر چه محتویات فلسفی گفته شده است که ما اینها را می توانیم همه را به سادگی به فلسفه تازمان انتقال بدهیم اینکه خدایان خودشان بهره از تن و روان و زمیر روان و زمیر انسان بوده از سوی سپس در اندیشه های ارپانی ایران بازتاب شده است ولی این فقط اتصال مستقیم و بیواسطه انسان را با ان خدایانشان میدهند یعنی تسبب ارپان بیشتر در این پایه در این رابطه اتصال مستقیم انسان با خدا در این آمیختگی انسان با خدا میماند و این نقطه اساسی است در مقابل اسلام بوده است چون که این رابطه عملا قرآن و رسول و مظاهر الهی رو همه را به کلی به کنار می نهد. من چند شعر را به طور نمونه میآورم که ببینید اینها چه این افکار از کجا آمده است چرا روخم نکند زرگری مولوی میگوید چرا رخم نکند زرگری چون متصل است به گنج بی و کان جمال و حسن و بها این رخم که زرده است متصر به چیز به, به گنج و کان جمال و حسن و زیبایی خدا اصل زیبایی بیا میگوید من چرا گرد جهان گردم من چرا گرد جهان گردم چه دوست در میان جان شیرین من است این همون ایده است فقط میترسد نام از خدایان ببرد و همین اندیشه نیست ریشه جستجوی انسان است. چرا کشش خدا و یقین به رسیدن در جستجو هست جستجو معلق بودن در آسمان نیست جستجو در هر گامی اتصال تازه به چهره ای دیگر از حقیقت است این مفهوم جستجو این نیست که آدم همیشه معلق در آسمان است همیشه آویخته است نه این مفهوم اشتباهی است که از جستجو در ذهن ها است چون که مولوی این شعر مشهورش را میگوید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که دیب ملولم و انسانم آرزاد من انسان را میگردم من دنبال مسلمان و مسیح و زردشتی و, و بهایی و اینها نمیگردم من دنبال انسان میگردم گفتند یافت می نشود جوته ایما گفتند که یافت می نشود آنم آرزاد من چیزی را میگردم که یافت می نشود عشق به چنین چیز دارم هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خورد کان, حقی... کان عقیق نادر ارزان ما میخوام کان را اتصال به کان پیدا کنم این معنای جستجو من است من چنین انسانی رو میخوام ببینید این مفهوم انسان است تفکر ایرانی دنبال انسان میگردد جستجوی انسان می کند در که این رابطه با قنا و است که انسان همت بلند دارد و هیچگاه تن به خاری و بندگی قدرت ها نمیدهد چون نقش تو در سینه ما خانه نشین شد چون نقش تو در سینه ما خانه نشین شد هر جا که نشستیم چپردوسه بر این شد مولوی اینجا نقش میگوید چونکه اگر هم دم از همگوهری بزند میدانید گرز تکفیر بر مغز ایشان پروش میآید این پیوستگی مستقیم هر فردی با خدا با خدایان در خود اصل شادی در خود انسان است که هیچ غم و اندوهی رو نمیتواند آن راه یابد برای این خاطر انسان همین. همیشه در فردوس است البته این یک سوی و یک چهره این تصویر بود ولی این تصویر چهره ها و رویه های اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و هنری دیگری داشت که در عرفان کمتر بدان پرداخته شد علتش هست این است که در عرفان مسئله اساسی با شریعت همون مسئله اتصال بود مسئله اتصال مستقیم انسان با خدا چنین انسانی را میاب که متصل با خداست که انسانی که با خدایان است و چنین انسانی احتیاج به قرآن و به رسولان و به مظاهر و اینها ندارد مستقیم در خدا هست اینکه خدایان ایران بهره از تن انسان هستند و رگ انسان بریده و خون و اینکه که چرا نباید چرا نباید رگ انسان بریده و خون انسان راخته شود یعنی جان و خرد و انسان باید گزند نپذیر باشد همین بهرمن بودن خدایان در تن انسان هستن ببینید این اینکه اینها بهره از تن انسان هستن خواه ها خونو تن انسان و رگ انسان همه اینها خدایان هستن اینها زندگی انسانن این رگ انسان بریده شد خون انسان ریخته شد یعنی جان و خلد انسان باید گزند ناپذیر باشد این برعکس قرآن که میآید حق کشتن مگر اینکه که حق به کشتن داشته باشد در فرهنگ ایران هیچ کس حق به کشتن ندارد چون که این خدایان هستند که می و کشتن خدایان هیچ وقت حق نیست حتی در یک ملحد و کافر و مرتد خون خدا هست گوهر خدایان در او هست هیچ کس حق کشتن ندارد در زخیره خارستایی می آید که هر خوردنی که خورده شود اون وقت قضا گردد که خون شود و قضای راستینی خون است و خوردنی ها را قضا از بحر آن گویند که اندر تن مردم خون خواهد شدن و به اندام ها خواهد رسید و تن از آن پرورده خواهد شد تا اینجا از زخیره خارد خوردنی و نوشدنی از دهان وارد تن می شود و دهان اومده که شکم باشد گستره خدایان خورداد و امرداد هستند خرداد خدای سعادت و امید و امرداد خدای جا که این ها چی شدن؟ همون حاروت و ماروت اسلامی باشن که در چاه بابل ورونه آبیخته می شون و همیشه یک انگشت و آب فاصله دارند یعنی هیچگاه همیشه عطش آب دارند و همیشه محروب از آبان دارن. حالا خدایانی که خدای آب و گیاهان خدایانی که خدایان ربع تشنگی و گرسنگی هستند و اینها اصل سعادت انسان هم. حالا خرداد و امرداد خدایان مزیدن و خدایان گواریدن در معده هستند مزیدن در دهان گواریدن در معده در شکم مزیدن و چه میشیدن؟ ببینید اینها فاصله مادیات، جسمانیات از روحانیات اینها ندارد چرا مزیدن و چشیدن که اصل آمیختن با جهان است بون داناییست چشم از کجا میاد از همین چشیدن میاد واجه چش... چش... چشتار و چشیدن اونها به آموزگار میگفتن به آموزه میگفتن به معنویات میگفتن این تن و... تن و روان و فکر اصلا جدا نیستن در چکر همکاری این دوتا خدا با هم چی میشود؟ اصل گواریدن است یعنی آتش برمی و این این ای که اینها با هم میزن اسمش را میگوند کیلوس این کیلوس یا اثاره به جگر میرود تا تبدیل به خون شود ببینید ما از دهان شروع کردیم البته من نای راه پرولن کنار گذاشتم چون که دراز میشود تا نشان بدهم که این خدا خدایان چجور در بهره از وجود انسانان و چگونه از اینها دانایی و خرد ایجاد می شود به قول ذخیره خارچاهی کیلوس اندر جگر پخته شود این کیلوس که در معده است این اثاره می رود به جگر از رگ گارتا باشد کیلوس اندر جگر پخته شود و قضای راستینی شود و قضای راستین خونم این مسئله هزارها ها مسئله خون است خون غذای حقیقی تن انسان است خون که وحونی باشد نی به معنای نایبه است نایبه ارتاست از نایبه وای یعنی باد آتش فروز و شیرابه یعنی خون شیرابه آزر پروز بیرون می آید ببینید از نی اینها از این تصویر دو چیز می فهمیدن از یکی شیره نی بیرون می که این همانی با خون داشت یکی باد بیرون می که آهنگ و نبا و سوهن باشد و این باد بادم آتش پروز هست. هم خون گرم است. هم آد. ببینید اینها مپاهیم یعنی در رگ نه، نهی که رگ باشد این وحو هست این بهی هست یکی موسیقی یه انگیزنده است و آتش است و دیگری همون جام باده است که ما در اون تصویر سنم عبید ذاکان دیدیم این خون حالا این خون از رگ گاو نخست که اصل جان هاست تبدیل به باده سرخ می شود و خون به کلی با مپایی که در اسلام همیشه با درد همراست به کلی پر دارد بلکه معتضاد با آن است. حالا این گاب نخست مجموعه مج... خدا... همه جان ها بود اینها همیشه خدا را با مجموعه جان... با مجموعه به هم آمیخته ی... یک بهره از تن این همانی می مجموعه جانها در یک پیکرش می گاو گاب نخست اعیب و داته نخست پیدایش این است که خون این همانی با آتش یعنی گرما دارد از این رو دیده میشود که در بندهش بخش سیزه هم جگر چون دریای فراخ کرد بنکده تابستان هست. یعنی جای و معدن تف و گرما هست. که گرما همون اشق است در این فراخ کرد من ارگفتارهای دیگر بحث خواهم کرد و خواهیم دید این چون را که گنار بگذاریم. میبینیم جگر دریای فراخ کرده است این خیلی مهم است با این چون را گفتم این چون را مانند رو همیشه کنار میگذاریم برای پاسره همگوهری را پیدا میکنیم و در بخش نهم در بندهش خون این همانی با ارزیز داده می شود که کپشیر باشد کپشیر کپ یعنی به هم پیونده کبیدن شیر یعنی شیره که این را به لحیم میگفتند که فلزات را با چیزهای دیگر به هم لایم میکن به عنوان یعنی خون اصل مهر است اصل پیوان دادن است اصل به وجود آوردن است به عبارت دیگر اصل عشق و مهر و پیوند دست در نامهای جگر این ویژگیها ها با تابیده شده است من میخواهم ندیکی تفکرات این ملل همسایه را ما میدانیم مثل امروزی که این ما گرفتار ناسیونالیست شده ایم فرهنگ چنین مرزهایی هایی رو نمیشناخته است و نمیشناسد. الان هم نمیشناسد. این تأثیات ملی به کلی این پیوندها ها از اصلا پاره میکند مثلا در ترکی به جگر باغیر میگویان و درست باغ به معنای بند رشته است که پیکریابی مهر است در کردی باغیر به مس میگویند که گفتیم نام جگر در ترکیه که این همانی با چی دارد مس با خدایان بهرام و زهره که خرم باشد و این و این خدایان بهرام و زهره خدایان عشق و در کردی باقه به معنای بسته گیاه و گیاه بسته و خود باق به باد گفته میشود که همون وایه و اصل عشق است ببینید اینها در همه این زبان ها ما همه این ریشه ها را پیدا می کنیم چون که اینها سریان و جریان داشته است این افکار در همه این ملل همسایه دیوار ملیات نکشیده بودن و در عربی به جگر کبد گفته می شود و این واژه از ریشه فارسی کبیدن می آید که به معنای لحیم کردن و سریش است سریش کردن است ها لحیم هست در پارسی و به همین علت کبوده به سفیدار گفته می شود که از درختان سنوبر است و در کردی به اون سپندادار می از همین س... یعنی دار سپندار خدا از همین نام این خدا را می شود شناخت و رنگ کبود که رنگ آسمان است، یعنی رنگ آبی به معنای اصل عشق است هنوز آبی رنگ عشق است و کبوده به درخت بیدمشک گفته می شود که نام دیگر همین 2 بهرامه است یعنی خرم و یا زهره و کبوتر که در اصل کپوتا هست مرغ صلح شما و امروزه مرغ صلح خورده است به همین معنای اصل عشق و پیوند است شما خوب این فرهنگ را در این پیوندها همه میبینیم میدانیم ما امروزه کبوتر را به و سلح ولی در خود نامش این واقعیت هست فقط ما این نامها را از هم بریدند این اصلها را و ما ریشه اینها را نمیدانیم و خیال میکنیم که یک چیز یک تمثیل و تشبیه است نه اینها هزارها در به صورت فرهنگ رویده است حالا به خود واژه جگر در پارسی باز میگردیم این واژه در اصل جی گاروه بوده است که مرکب از جی گرف باشد این واجه جگر جی گرف گرفا زهدان و مادر و در سانسکریت گربا و در حدوارش گفر و امروز تبدیل به جرف شده است خب حالا ما انقدر از جرف های فکر صحبت می ولی بلی نمی این واژه جرف کجاست این جرف. جرف این نیست که من یک چیزی را فقط فرو بروم بلکه معنای است که من در اون زهدان یعنی سرچشمه آفرینندگی بروم. جرب شدن یعنی به سرچشمه آفرینندگی رسیدن جرب ها است که سرچشمه آفرینندگی هست نه اینه که من هگل و کانت و فلان و فلان را که وقتی خوب بفهمم فیلسوف شدم نه جاب شدن این است که من در اینها سرچشمه آفرینندگی خودم را کشف کنم پیدا کنم و این واژه در پهلوی گور شده است که هم به حفره و گود و هم به شکم و رحم و هم به جنین گفته می شود گور کردن یعنی بارور کردن و آبستان کردن حالا این نام را که امروز گبر شده است به مقام و خورمدین ها یعنی مجوس گفتن گبر و برای این ها این نام یک احانت بود برای این خاطر گبر چون که معنیش را نمیپهمیدن یک معنای تخخیرامیز بود این تصویر خیلی مهم بود این آزادگی و استقلال را نشان میداد چرا تصویر جنین در ذهنان در ذهنان به معنای اصل آفریننده بودن است مثل نام تخم تن یعنی تخم و نطبه در ذهن. رستم ما تخم در ذهنان است یعنی مرد مستقل و آزاده ببینید ما همه اینها را این فراموش کردیم و بارونه میفهمیم. حالا این جیگر که بوده جی باشد این بخش اولش را توضیح دادم. بخش دویومش که بخش اولش که پیشوندش باشد جی خیلی مهم است. این را باید هم به معنای زندگی و نیرومندی است هم به معنای عشق و اشتیاق است. خوب جگر زهدان چی است؟ زهدان جوشیدن و روییدن جی یعنی زندگی نورومندی و عشق و اشتیاق با هم است. این فوق العاده مهم است. تمام فلسفه ایران از این ساخته می شود. یعنی جگر پیوند دو چیز با هم است. پیوند زندگی و نی با عشق و اشتیاق از این است که بعدش خواهیم دید خرد انسان پیدایش می‌آورد یعنی مهر و عشق مهر زندگی و مهر دو چیز از هم جدا ناپذیر هستند این بنیاد فلسفه ایران بوده است بنیاد فرهنگ ایران بوده است